بسم الله الرحمن به نام خداوند بی اندازه مکربان نهایت بارشد ای جامع بر خود پیچیده به شبهنگام برخیز مگر پاره از آن نصفش را یا اندکی از آن را کم کن یا چیزی بر آن بیفضاید و قرآن را با تأمی و تعمل بخوان. بیگمان ما به زودی بر تو سخن سنگین را القا می برستی بر برخواستن شب برای عبادت گام سخت استوار و, و سخن بس پایدار است بیگمان برای تو در روز مشغله و آمد و شده دامندار است نام پروردگارت را یاد کن و تنها با او دل ببند او است پروردگار مشرق و مغرب جز او معبودی نیست پس او را کارساز خود بگیر و بر می گویند سبر و به نهو شایسته از ایشان دوری گزین و مرا با تکلیب کنندگان صاحب نعمت تنها گذار و ایشان را اندکی مهلت بده بیگمان نزد ما غلهای گران و آتش سوزان است و تعمی است گلوگیر و عذاب است روزی که زمین و کوها سخت بلرزه می افتد و کوهها به توده های ریگ روان مبدل می گردند ای مردم بگمان ما به شما پیامبری را فرستادیم که بر شما گواه هست چنانچه به سوی فرعون پیامبری را فرستاده بودیم ولی فرعون به آن پیامبر نافرمونی کرد بنابر آن او را سخت گرفتار ساخت. در صورتی که با کفر خود دوام دهید اگر همچون فران در دنیا گرفتار ساختن نشدید پس چگونه از عذاب روز خلاصی حاصل می کنید که کودکان را شدت عذاب آن پیر می سازد من بدان روز شگافتنی شود و وعده خدا تحقیفتنیست بگمان این پندیست بنابراین هر که بخواهد راه را به سوی پروردگارش برگزیند. بیگمان پروردگارت می داند که براستی قریب دو سلس شب یا نصف آن یا سلس آن را برای عبادت می خیزی و نیز گروهی از کسانی که با تو هستند خداوند شب و روز را اندازه می کند او دانست که شما حساب دقیق آن را گرفتن نمی توانید بنابراین شما را رحمت خود بخشید پس هر قدر از قرآن را که با شما آسان است بخانید خدا دانست که بعضی از شما بیمار خواهند شد و دیگران در زمین سفر می کنند و از فضل خدا می جویند و دیگران در راه خدا می جنگند پس هر قدری که از آن به شما آسان باشد بخوایی نماز را به تمام و کمال ادا کنید زکات را بپردازید و با خداوند قرض بدهید قرض حسنه و هر خیری را که برای خود از پیش می فرستید آن را نزد خداوند می آبید این بهتر است و مزدی بزرگتر دارد از خدا آمرزش بخواهید بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است